با سلام به شنوندگان خوب افسانه های صوتی از سری داستان های کتاب مردی که نمیخواست بمیرد با داستان دیگه ای در خدمتتون هستم امیدوارم از شنیدن داستانمون لذت ببرید اسم داستانمون هست عرباب کیسه برنج سالها قبل جنگجوی بزرگی تو ژاپن زندگی میکرد که بهش میگفتند تاوارا تودا به معنی ارباب کیسه برنج اسم واقعی اون فوجیوارا هید ساتو بود ولی اینکه چرا همچین لغبی بهش داده بودن یه داستان شگفتانگیز و شنیدنی داره که براتون تعریف میکنم. هیدساتو که روحیه جنگجویی داشت یه روزیه یهو تصمیم گرفت که به سفر بره چون اون نمیتونست که بیکار و تنبر یه جا بمونه پس شمشیرش رو به کمرش بست کمان بزرگش رو که بلندتر از خودش بود به دستش گرفت تیرای کمونش رو هم بردوشش گذاشت و بدون اون که به کسی چیزی بگه راه سفر رو در پیش گرفت هنوز راه زیادی نرفته بود که به پلی رسید این پل دو طرف رودی رو که به دریاچه زیبای بیووا میریخت به هم پیوند میداد. داد. جنگجو چند قدمی روی اون پل بر نداشته بود که یهو یه, یه مار بسیار بزرگ یا بهتره بگیم یه اجده هایی رو دید که وسط پل خوابیده و راه رو بسته. اجده ها خواب بود و هر بار که نفس میکشید کشید آتیش و دود از های بینیش بیرون میزد. هید ساتو شک کرد دو دل شد که چیکار کنه از همون راهی که اومده برگرده یا اینکه پیش بره و از روی اجده ها عبور کنه البته چون اون جنگجوی دلیری بود ترس رو کنار گذاشت و شجاعانه پیش رفت از روی اجده ها قدم برداشت و از روی بینی و سرش گذشت و راهش رو از سر گرفت و بدون اون که نگاهی به عقبش بندازه همون جوری پیش رفت و پیش رفت ولی خیلی دور نشده بود که یه دفعه کسی از پشت سر اونو صدا زد جنجو برگشت و به عقب نگاه کرد و دید که اجده ها ناپدید شده و جای اجده مردی نشسته که به احترام اون در برابرش سرخم کرده گیسوهای سرخ و بلند اون مرد روشانه ها شریخته بود. رو سرشم تاجی شبیه اجده ها دیده میشد. یه لباس سبز دریایی به تنگ کرده بود که نقش و نگار صدف داشت. هیده فکر کرد که اون یه مرد عادی نیست. پس شگفت زده شد و پیش خودش فکر کرد که اون اجده های بزرگ کجا رفته؟ آیا این مرد همون اجده هایی که خودش رو به شکل آدمی زاد درآورده هیدساتو جلو رفت و وقتی نزدیک مرد سرخ رسید پرسید شما بودید که منو صدا کردین اون مرد گفت بله من بودم من از شما یه خواهشی دارم آیا خواهشم رو قبول می‌کنید و برآورده می‌کنید هیدساتو گفت خب اگر در توانم باشه حتما اونو انجام میدم ولی اول باید به من بگید که چی میخواید ازم. مرد سرخمو گفت من اجده ها هستم. پادشاه دنیای آب این دریاچه و خونم هم بین آبهای همین دریاچه است. هیده گفت خب چه کاری از دست من برمیاد. اجده ها کوه بلندی رو که اون طرف دریاچه وجود داشت به مرد جنگجو نشون داد و گفت پشت این کوه بلند هزار پای بزرگ و غولاسایی زندگی می کنه که دشمن منه. اون چه می خوام اینه که اونو از میان برداری. خیلی روزگار زیادی هست که من در این دریاچه هستم و فرزندان و مردمان بسیاری دارم. در گذشته و تا چند وقت پیش، ما زندگی آسوده و بیدردستری داشتیم تا اینکه سرکله این هزار پای پیدا شده و به خونه ما راه پیدا کرده. از این به بعد اون هر شب به دریاچه و به قصر من میاد و یکی از بچه هام رو یا یکی از مردمای سرزمینم رو میدوز و با خودش میبره. من در برابرش ناتوانم و کاری از دستم بر نمیاد. اگه چند شبه دیگه به همین مدل بگذره دیگه هیچکس از خاندان و فرزندا و بندگان و مردمای من باقی نمیمونن و حتی خود منم جونم رو از دست میدم پس از نامیدی و درماندگی تصمیم گرفتم که از آدمای یاری بخوام چند روزه که با چنین قصی روی این پل دراز میکشم و به شکل اجده ها در میام که همونجوری که خودت هم دیدی من راه رو میبندم خودم رو به خواب میبزنم و منتظرم که جنگجوی دلیل رو نیرومندی گذرش به این طرف بیفته. ولی خب هر کسی که به اینجا میرسه همین که چشمش به من میفته وحشت میکنه و فوری از اینجا فرار میکنه. تو تنها کسی هستی که بدون ترس و واهمه به من نگاه کردی و به خودت جرأت دادی و از روی سر من گذشتی. و همچنین من دیدم که تو جامعه و صلاح جنگجوها رو داری پس بهت التماس میکنم که به من رح کنی، آیا میشه که کمکم کنی و دشمنم هزار پای خونخوار رو از پا در بیاری؟ هی با شنیدن این داستان دلش به حال اجده ها سوخت اونو آروم کرد و بهش قول داد که کمکش کنه قول داد که هزار پا رو بکشه. سپس از اجه پرسید که مخفیگاه اون هزار پا کجاه که بتونه بره بهش شبی خون بزن و اونو از بین ببره. اجه ها بهش گفت که اون هزار پا در کوهستان و در بین شکاف ها و شکستگی سنگ ها خونه کرده. ولی از اون جایی که هر شب در ساعت مشخصی به دریاچه و به خونه من میاد بهتره که اونا منتظر بمونن اجده ها رو به همراه خودش میونه دریاچه و به درون قصرش برد. همون جوری که اون جنگجو در پی اجده ها میونه آب فرو میرفت، آبها از هم شکافته می و راه براش باز می شد. به این ترتیب تا رسیدن به قصر اجده ها حتی لباساش لباساشم خیس نشد. هیدساتو تا اون زمان هرگز همچین کاخی ندیده بود کاخی از سنگای مرمر سفید و در میون دریاچه اون بارها درباره اجدهها و کاخش میون دریا و در عمق اون و بنده ها و کنیزاشو ماهی ها و دیگر جانورهای دریایی شنیده بود و خونده بود ولی تا حالا همه اونها رو در برابر شنیده های خودش فقط یه داستان فرض می‌کرد. ماهیای ماهی های قرمز و قشنگ و ماهی های زرین در برابر اجده و مهمونش صف کشیدند و آماده خدمت گذاری شدن اونا جشن فوقلاد شگفتانگیزی، برای مهمون اژدها به پا کردند و یک سفره خیلی گسترده در برابرش آماده کردند که سینیای بلوریش نقش و گل های نیلوفر آبی بود و چوبکهای ویژه برنج خوردنش از آج تراشیده شده بود اژدها و جنگ‌دو نشستند و مشغول غذا خوردن شدند که درها کنار رفت و ده تا ماهی قرمز و در پی اونها ده تا ماهی کپور نقرهای ای اومدن داخل. ماهی های قرمز می و کپور ماهی چنگ و تار می و می و می نواخدن. چند ساعتی گذشت و نیمه شب شد. آواز و رقص یاد هزار پا رو از یاد اونها برد. اجدها پیاله چای به جنگجو تعارف کرد که یه ستونهای کاخ به لرزه در و صدای قدم های به گوششون رسید که نزدیک و نزدیکتر میشد انگاری که یه سپاه بزرگ از جنگجوهای مسلح به طرف اونها میاد. هید ستو و اجده ها بلند شدن و به طرف ایوون کاخ رفتن اونا در اون طرف ساحل دریاچه دیدن که در تاریکی شب دو تا گوی بزرگ آتشین از کوهستان داره میاد پایین و نزدیک و نزدیک تر میشه. اجدها که کنار مرد جنگ جویستاده بود و از ترس به لرزه افتاده بود فریاد زد این هزار هزارپاست این دو تا گوی فروزانم چشماشه. باز هم اونه که داره به شکار ما میاد. ولی امشب زبان مرگش فرار رسیده ساتو کمی دقیقتر نگاه کرد و در زیر نور کم ستاره های شب دوتا گوی آتیشی یه تن دراز و پیکر دیوازهای هزارپا رو دید که دور کوه میپیچه و میخزه و پیش میاد. هیدساتو سعی کرد که ترس رو از خودش دور کنه و تلاش کرد تا اژدها رو آروم کنه. بهش گفت نگران نباش، من این هیولا رو همینجا و در برابر چشم تو و شما و مردمتون رو از شر اون خلاص میکنم فقط کمان و تیرهام رو به من بدید. اژدها فرمان داد که کمان و تیرهای مرد جنگ رو براش بیارن. هیده ساتو به تیراش نگاه کرد و دید که فقط سه تا تیر داره پس باید خیلی دقت کنه اون کمانش رو به دست گرفت و تیری از تیردانش برداشت و روی کمانش گذاشت با همه نیروش زه کمانش رو کشید و پیکان تیرش رو به طرف هزارپان نشانه گرفت و تیرش رو رها کرد تیری که تیریکه ساتو انداخت، آسمان تیره و تاریک شب رو شکافت و درست پیش رفت و و درست بر وسط سر هزارپان اما به جای اون که در سرش فرود بیاد، از روی سرش سر خورد و رو زمین افتاد. مثل اینکه به سنگ سختی خورده باشه. هیدساتو نترسید، یه بار دیگه یه تیر دیگه از تیر کششش در ورد و تو کمانش گذاشت و به طرف هزارپا شلیک کرد. بازم تیر به سر حیولا برخورد کرد ولی هیچ آسیبی بهش نزد و بدون اون که بهش صدمهی بزنه به زمین افتاد. هزارپا یه هزارپای روینتم بود و هیچ تیری بهش اثر نمیکرد. اجدها که دید تیرای جنگجو به هزار پا حتی زخمم نمیزنه و اونو نمیکشه بازم وحشت کرد و به لرزه افتاد. جنگجو دید که فقط یه تیر داره. و اگه این یه تیر رو هم پرتاب کنه و هزار پا نمیره، اون نمیدونست که چیکار باید کنه. حالا هم اون هزار پای خزنده کوه کرد، که پاهای بیشماری داشت و تن درازش رو هفت بار دور کوه پیچونده بود، به درون آب دریاچه پیش میرفت و گویهای های آتیشین چشماش نزدیکتر و درخشانتر می شدن. هزار پا آب رو میشکافت و به تندی پیش می یهو یه يه فکری به سر جنگ جو افتاد. اون یه افثانه ای رو به یادش آورد که می آب دهان آدم کشنده هزار پاست. ولی این هزار پا یه هزار پای معمولی نبود. یه حیولای قولاسا بود. هید سومین و آخرین تیرش رو هم برداشت پیکان تیرش رو هم تو دهانش خیست کرد و بعد تیر رو در کمانش گذاشت و به دقت خیلی زیاد به سر هزار پا و بین دو تا چشمای درخشانش نشانه گرفت و تیر رو رها کرد. بازم تیر یک راست رو سر هزار پا و درست بین چشش فرود اومد. ولی این دفعه به جای اینکه مثل مثل دوتا تیر قبلی بدون آسیب باشه و به زبین بیفته انگاری که رو سر اون هزارپا نشست و تا ته فرو رفت. تو همین لحظه یه لرزه شدیدی تو پیکر و بدنه هزارپا افتاد. اون جانور وحشی از رفتن موند و چشمای فروزانش کم کم داشتن بینور و بیفروغ می شدن. مثل یه خورشیدی که در پایان روز تیره و ابریبه شد تو افق فرو بره چشما هزارپا کاملا تاریک شدن یه تیرگی بیمانندی که تو شب فرو رفته بود. یه توند باد خیلی شدیدی وزیدن شد انگاری که کار جهان به پایانش رسیده بود، سرتا سر کاخ به لرزه درومد و هر کسی به یه گوشه‌ای پناه برده بود ولی یهو سرانجام اون شب پرخادسه و پرهراس سپری شد و اینگاری که خورشید بار دیگه به آسمون اومد و آسمون رو روشن و آروم کرد اون وقت هیدساتو اژدها رو صدا زد که به ایوان کاخ بیاد و ببینه که هزارپا کشته شده و دیگه دوران ترس و هراسش به سر اومده اجدها و همه فرزندا و خدمتکاراش شاد و امیدوار اومدن و در زیر روشنی خورشید صبحگاهی پیکر مرده هزارپا رو دیدن که روی آب دریاچه شناور شده و از خون به رنگ سرخ در اومده اجدها از شادی سر از پا نمیشناخت همه اعضای خانوادش پیش اومدن و از جنگجو دلاور تشکر کردن و در برابرش تعظیم کردن اجده اونو رهاننده خودش و جنگجوترین و نترسترین این سراسر ژاپن نام گذاشت بازم جشن دیگه ای آماده کردن یه جشنی با شکوه تر از جشن قبلی انواع غذاهای معتر و رنگارنگ رو تو سینیهای مرجانی و بلوری در برابر جنگجو گذاشتم و با شربت‌های گوارایی که تا اون موقع هیده ساتو از اونها نخورده بود و در پیاله‌های های سرخ ازش پذیرایی کردم خورشید تو آسمون اومده بود دریاچه آبی و آرام مثل الماس می درخشید و کاخ هم هزاران بار زیباتر و چشم نوازتر شده بود. اجدها ها سعی کرد که جنگ رو, رو چند روزی پیش خودش نگه داره. ولی هیده ساتو برای رفتن اصرار می کرد و می که اون وظیفش رو انجام داده حالا باید به خونه برگرده. اجده ها خانواده او و همه خدمتکاراش از رفتن ناراحت شده بودند. ولی خب قبل از رفتنش ازش خواهشی کردند که چندتا تا حدیهی کوچیک بهش به نشانه سپاسگزاری بدن. تو همین لحظه یهو خب گروهی از ماهیا که به صورت انسان تبدیل شده بودن همشون لباس رسمی پوشیدن و تاجهایی مثل تاج اجده ها رو سرشون گذاشتن. اونا از خدمتگذار اجده های بزرگ بودن. هدایایی که اونها با خودشون آورده بودن از این قبیل بود یه ناغوس برنجی بزرگ کیسه برنج یه توپ پارچه ابریشمی و یه دیگ هیدساتو ساتو نمیخواست که این همه هدیه رو قبول کنه اما از جایی که اجده ها خیلی پافشاری کرد نتونست که از پذیرفتن اونها خودداری کنه مرد جنگ رو از دروازه کاخ بیرون اومد و تا انتهای دریاچه و در پای پل رفت. اجده هم اونو همراهی میکرد و صف افرادی که هدایا رو به دوش میکشیدن در پشت اونها روان شده بودند. اجده ها یه بار دیگه از هیده خدافظی کرد و با آرزوی خوشبختی و کامیابی برای اون اون رو به خدا سپرد. ولی مردایی که هدایا رو می‌بردند هیدساتو رو تا خونش همراهی کردند. از طرف دیگه خانواده و خدمتگذارای هیدساتو از برنگشتنش کمی نگران شده بودند. ولی حدس می‌زدن که طوفانی که دیشب پیش اومده اونو از بین برده باشه. اونا چشم به راه منتظر بودند که یه دفعه با دیدن هید ساتو و صف همراهش، فریاد خوشحالی کشیدن و بقیه رو هم صدا زدن. همه با تعجب اومدن جلو و هدایایی که داشت می رو تماشا می و تعجب کرده بودن که اون مردا و اون چهره چه ها،, ها و لباس های عجیبشون چه چیزایی دارن میارن؟ آرن؟ خدمت گذاره اجده ها، و پیشکشها رو در برابر خونه هیدساتو رو زمین گذاشتن و یهو ناپدید شدن خیلی زود معلوم شد که هدیه های پادشاه دریاچه خاصیت نیروی جادویی داره. تنها ناغوس عادی بود هیدساتو ناقوس ناوس رو به معبدی که در نزدیکی اونجا قرار داشت بخشید اون ناغوس رو آویزون کردن تا هر روز در زمان معینی نواخته بشه و مردم رو از وقت و ساعت روز آگاه کنن ولی کیسه برنج جادویی بود هرچی از برنج درونش برمی داشتن تا از غذای مرد جنگجو و خانوادهش و خدمتکاراش بپزند از مقدارش که کم نمی شد. هیچی مقدارش بیشترم می شد اون توپ پارچه ابریشمیم هیچوقت کوتاه نمیشد چقدر بارها و بارها قطههایی درازی ازش میبریدند که براشون لباس و جامعه نو بدوزن و هر سال بپوشند بازم پارچه وجود داشت دیگه پخت و پسم شگفتانگیز شده بود تنها کافی بود که یه مقدار برنج تواون بریزند و یه غذایی طلب کنند تا دیک هم که شگفتانگیز بود بدونه هیچ کم و کاستی خوشمزه ترین خوردنی ها رو تو خودش بپزه خیلی زود آوازه خوشبختی که به هید رو کرده بود تو همه جا پراکنده شد و از اونجایی که اون هیچ نیازی به خرج کردن پول برای خرید برنج یا ابریشم یا هیزم برای آتیش نداشت مردی توانگر شد از این به بعد مردم اونو به اسم ارباب کیسه برنج اسم گذاشتن این بود داستان شگفتنگیز هیده ساتو امیدوارم از شنیدن داستانمون لذت برده باشین سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها